افسونه افسانه به نام خداوند دوستی ها. سلام افسانهها ها روایت كه که نویسنده ندارن نویسنده افسانهها ها مردمانی هستند که طی قرنهای متمادی این روایت ها رو به وجود آوردن و اونها رو سینه به سینه منتقل کردند مردمانی که ذهنی پر جنب و جوش داشتن و به زیبایی تونستن پند و اندرز و نکتهی رو در دل افسانه جا بدن در این برنامه می‌خوایم یکی از افسانه‌های ایرانی رو خدمتتون روایت کنیم. افسانه به نام یار بد بدتر بود از مار بد. این افسانه از کتاب افسانه‌های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اقتباس شده. اگه همچنان ما رو با برنامه افسون افسانه همراهی می‌کنید، شما رو به شنیدن افسانه یار بد بدتر بود از مار بد دعوت می‌کنم. گذشته خیلی دور زنی به نام هشمت با شوهرش زندگی میکرد هشمت زن قرقرو و بدزبانی بود و همه رو با زبونش آزار میداد بیشتر از همه شوهرش از این رفتار هشمت دلازرده بود و مجبور بود بدزبانی های هشمت رو تحمل کنه کاش به ما روزا سلام هشمت چه سلامی چه علیکی خواستم که با دست خالی اومدی خونه رحمت این چرف یه حشمت خیره سرم خسته و گفته از سر کار اومدم خونه اینجای خسته نواشید گفتنته نه اینکه کوه و جا به جا کردی نه اینکه دستات پر از صلا و جواهره نه اینکه جیبات پر از سکه و اسکناسه چی؟ برای چی باید بهت خوش آمد بگم رحمت به خاطر کدوم دلخوشی باید بهت بگم به خونه خوش اومدی ها همان از دست دو با این زبونت خستگی رو تو تن آدم دو برابر میکنی خب خوابه واسه ما عدا اصولم داره خداوندی خدا, خدا از زندگی کردم با تو خسته شدم چرا؟ رحمت. بخواب نیگه سر به بیابون بذارم مگه من کاری به کارت دارم که ازم خسته شدی؟ دیگه بخواست چی کار داشته باشی؟ تو مایه بدبختی و بی من رحمت نه پولی نه پلایی نه چارغت کشمیری نه لباس فاخری مگه من, من برای خودم لباس بیخرم نه دیگه نمیتونی که بخری نمیتونی تو بی ارزی. آره بی ارزهی چون بی دست و پایی چون نمیتونی منو این خونه و زندگیو از این فلاکت نجات بدی ببین زنایی که چه دور دارن زندگی میکنن زن حسابی اگه منظور زنای همسایه است شوهراشون روزی پنج قرون در آمد دارن من چی؟ من روزی چار عباسی میگیرم نازم نکرده از افتخاراتت برا من بگیر خدا میدونم چنده غاز میگیری خب دیگه خوش ندارم ببینم تشمت چیکار کنم؟ خوش ندارم باها حرف بزنم دیگه طاقتم تاکش کنم تا رو خدا این زندگی لایق زنی مثل منه نه. من کجا و همه منفتی و جاروشش و هممالی کجا پش Thank you. بله دوستان کار هر روزه هشمت این بود که تا میتونست به جون شوهرش قور بزنه و اونو تحقیل کنه تا اینکه شوهرش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه و برای اینکه از شر هشمت خلاص بشه سر به کوه و بیابون گذاشت اما بد زبونی های هشمت تمومی نداشت و حالا همسایه هارم کلافه کرده بود آهای جیس اینجوری بر رو بر بر نگاه بکنیم چه آدم ندیدی بعد میگم بچهاتون نباید اندمه در خونه من رد بشن؟ بعد میگم خوش ندارم بچهاتون رو ببینم؟ بعد میگم نباید صداتون تو این کوچه بپیچه؟ چیه؟ که زبونت گرفته فخری؟ ای خب بس کن هشمت خانوم به خود همه هم کلافه شدن از دست رفتار و بد زبونی تو کلافه شدن که شدن؟ به من چه؟ همین شماهای پر افاده این که میخوایی من هنناق بگیرم میخوایی من خفه خون بگیرم و بشم یادم تو سری خود ولی کور خوندین به من میگن هشمت من زیر بار حرف زور رمیرم اخی کی به تو زور میگه که اینقدر آدام ها را انداختی خودتو؟ همین خودتو از همه بدتری فخری بگو ببینم سا چرا بچهاتون بعد از در خونه من رد بشن؟ بابا حشمت خانم بچه دیگه نمیتونن که پرواز کنن بابا اون طفلکی و سر صدایی ندارن که نازم نکرده واسه من بلبل زبونی کنی من خوش ندارم هیشکی از دم در خونم رد بشه از به بعد ببینم بچهاتون از دم خونه من رد میشن و همه شونو به باد کتک ای. میگیرم می‌تونین بهشون یاد بدین از اون وره کوچه برن از اون بشت بوم‌ها برن خلاصه هر غلطی می‌خوان بکنن ولی از در خوده‌ی من رنگ نشن آره دهش نه من بیجا پس کوچه‌ی شروع نشی اون بخیر کرد خدا دوچالوم هم از زبون مادر را انس بشون شرم کن زن شرم کن از وقتی که رحمت می از دست تو سر به بیابون گذاشت من به همسایه سپردم کاری به کارت نداشته باشن ولی انگار این تویی ای که به کار همه کار داری اولندش که اگه رحمت به گور شده ارزه زندگی نداشته از تمبلی آواره شد به اهدی رفت نداره ثانیه کت خدای ده که تو باشی معلومه مردمش چی میشن؟ شن آیا یو باشم. به من میگن هشمت خوش ندارم کسی رو حرفم حرف بزنه اگه اعتراضی دارین میتونین از این ده بری ای. میتونین از این دیار بری من همینم وای به حالتون اگه یه روزی به اشنافم پشت سرم حرف میذاریم وای به حالتون اگه با هم چش تو چش بشیم وای به حال خودتون و بچه هاتون اگه از دمه در خونه من رد بشیم نخش این کاری نمیشه باید فکری به حالتو کردهش من نکرده. لازم نکرده تو یکی به فکر من باشین جناب کت خدا خودم از اهدهی کارای خودم بر میگم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> منم منظورم این نمود که آسین بالا بزنم کمکت کنم گفتم باید فکری کنیم و این جماعت بینبه از شر تو خلاص بشم حالا میبینی اشفر؟ بله؟ شاچه نما میدم؟ بازارهای زبانی حشمت حوصله همه را سر برده بود حالا همه اهالی ده از دست هشمت و بعد زبونیاش خسته شده بودن از طرفی کت خدا هم در فکر بود که یه جوری بالاخره از شر هشمت خلاص بشه تا مردم ده بتونن نفس راحتی بکشن تو بگو چی کار کنیم اسمایی روزی نیست که همسایه های هشمت نیانو ازش گله نکنن چقدر بهشون بگم صبر کنین بگم نمیدونم کت خدا. به خدا زن بچه منم از دستش آسیم خونه باجناقم هم نزدیک خونه هشمته سال تا سال جرعت نمی بریم خونه اینطوری این نمیشه. نظم ده به هم خورده باید هر جوری شده از شر هشمت و بدزبونیاش خلاص بشیم میگی چی کارش کنیم؟ به نظرت اگه بهش بگیم از این ده بره حاضر میشه بره نه شک نکنیم که نمید تازه بدتر میکنه و بیشتر به همه توحیم میکنه میخوای یه روز همه گی با زن و اتشاه بریم خونش و ازش بخواییم که رفتارش عوض کنه فایده نداره خدا هزار بار مردم این ده رفتن تو خونش نشستم بهش التماس کردن که دست از بدزبونی برداره ولی فایده نداشت ولی اینطوری هم که نمیشه آخه صدای همه در اومده مردم آرامششون رو ازش دشت دادن؟ خوش به حال رحمت که جونشو برداشت و از این دفرار کرد رحمت رفت و احالیه یه ده رو با این زن بدن تنها گذاشت یه فکری به ذهنم رسیده کد خدا ای خب بگو نزدیکی های ده یه چای هست که خیلی امیقه خب به نظر چطور دست و پای هشمت رو ببندیم شبونه بندازیمشتون چا راست میگی یا اینجوری همه شرش شهرش خلاص میشن آه، فکر نکنم حشمت بتونه از اون چا جون سالم به در ببره. اگه یه وقت یکی پیداشگر چی اون وقت همه رو نابود میکنه صورتامون میپوشونیم کرد خدا هشمت نمیفهمه که این کار کرده خدا رو چه دیدی؟ وقتی دی دید سرش به سنگ خورد و سر عق اومد و برگشت کنه خیلی خوب باشه مسی که چاره ای نیست روز بعد اهالی ده با های پوشیده به خونه هشمت رفتن و دست و پای هشمت و و اونو به بیرون از ده بردن و انداختن داخل چاهی که اطراف ده بود مردم ده چند روزی از دست حشمت و بدزبونیاش در امان بودن تا اینکه یه روز چوپانی جوان به نام قدرت از کنار چاه گذشت و دلو و داخل چاه انداخت تا از چاه آب بیرون بیانه این گرمه، کش آب این چه ها خونک باشونه چه چقدر هی بای! خدا خییرت داده خدا خیرت بده؟ مار مار مار... مار مار... مار... تو چیه تو تا تو <متلا> Shh. کاری به کار کسی نداشتم چند روز پیش یه زن خورغورو انداختن تو اینجا پس به اسم هشمت از اون روز به بعد آرامش من به هم ریخت حریف هشمت که نمیشدم اون تمام از روزگار من دره ورد <وصح> خدا خیرت بده مرد خدا خیرت بده هر کاری بخوای انجام میدم برات فقط نه رضای خدا دیگه نزار نظر من با هشمت رو برو بچم باشه باشه باشه باشه باشه دلت میخوای ک بیابون ببینه به کجا میره صاحب. باشه باشه باشه برو برو این بری آدم میره یه روز بعد محبتی سروتی و برانگو را که باشه باما باشه الان برو تا میتونی از اینجا دور شد تا دسته اینجا آدم ایزادی برو دیگه اه. مار از شاه دور شد و قدرت هم به راهش ادامه داد اما طولی نکشید که مار با عجله به طرف قدرت دوید قدرت اول خیال کرد که مار قرار اونو نیش بزنه برای همینم پا به فرار گذاشت اما وقتی که مار بهش گفت که کار مهمی باهاش داره ایستاد و به حرفای مار گوش داد هیچیه بابا اپنی اومده مانه بایسا بایسا چیزه چیزه چیزه چیزه چیزه همین امروز همین امروز باید محبت زورا جمعه کنم بابا دست باردی که توان بابا چه موارد سمیدی از سی اگه بدنی چه لطفی در حقی من کردی اینطور یارت نمیز دیدی اخی توانسن من من باسی تو چه میتونوان میتونم کنم شیدی ها چی مثلا چه کاری؟ راستاً این که این امروز میرم به قصر پادشاه دوره گردن دخترش میپیچم خب بعدم به هیچ شکلی از دور گردن دختر پادشاه باز نمیشم. تو بیا بگو من میتونم کاری کنم ما را از دختر پادشاه دور بشه. بختیام که من تو را دیدم دختر پادشاه را میکنم میکنم از قصر بیرون. خب بعده چقدر نادونی تو آه. تو میتونی قبلش به پادشا بگی در عوض این خدمت میخوام با دختر ده استفاهاش کنم بعدم بهش بگی نصف سربتشو به تو بده جموزش پادشای این کارو میکنه معلومه به خاطر دخترش هم که شده دخترشو به عقد در میار و نصف رو به تو میده <تصفيق> باشه برو چی کار میکنی باشه بش. طبق قولی که به قدرت داده بود به قصر رفت و دور گردن دختر پادشاه پیچید همه مارگیرها از دور کردن مار عاجز شدند تا اینکه قدرت اومد و به پادشاه گفت به این شرط حاضر مارو دور کنه که پادشاه قول بده دخترشو به عقد قدرت در بیاره پادشاه هم قبول کرد و قدرت راهی قصر شد آسوده خاطر باشید قربان من زبون اون رو میفهمم اگه دخترم رو را نکرد چه؟ اگه دخترم را کرد چه؟ بابا من اینجا هستم که چونی این اتفاقی نیفته اگه باور نمیکنی همین الان به اتاق دخترتون بریم بریم او، اون مار بزرگترین و وحشدنا و کترین مار در تمام عمرم دیدم با عله نمیدونم چطور تونست وارد قصر بشه سر از اتاق دخترم در بیاره سربرم بنام ماره دیگه موزی و بد قلقه ولی من میدونم چطور باید حسابشو ارسه احا اونها ش... اونم از مار لعنتی ببین دخترمو مار... به چه روسی انداخته بعد دخترم در حال خف شدنه او او او او او. نظار اون مار دختر منو بگیر از من چشت جناب پاشا شما تشهیف ببینیم من این مار رو از اینجا دور میکنم فقط شما برید بسیار خوب. خوب جناب مار بخونت اعمال کن دختر بینمار کن باشه قدرت عزیز باشه تو چه دلتمه تو دختر بی رو به این روز بندازیش نگران نباش تا یکی دو ساعت دیگه به هوش میاد بعدم پادشاه اونو به عقد تو در میاره خب دیگه منم چکار کنی؟ گیر کنی هداکی دینمو به تو ادعا کردم از این شر میرم آره خوبه, خوبه برو پشت سرتم نگرانو چون من از این به بعد میخوام با حمزرف که دختر پادشاه با آرامش ازدواج کنم و زندگی کنم باشه ما رفتیم برو خیلی پیش یش برو برو مار از اون شهر رفت و پادشاه هم طبق قولی که به قدرت داده بود دخترش رو به عقد قدرت در آورد قدرت زندگی خوب و خوشی رو شروع کرد تا اینکه یه روز پادشاه از او خواست که به دیدنش بره چه خمش شده سر اتفاق بدی افتاده؟ دیگه بدتر از اینه نمیشه قدرت چی چیشونه؟ پیکه امروز خبری برام آورده چه خبری؟ خبر برده که مار بزرگی وارد قصر پادشوه یکی از کشورهای همسایه شده دور گردن دخترش پیچیده ای وای راست میگن. بله اینطور که لشوری هاشو میگفتن همون ماریه که چند سال پیش میخواست دختر من از من بگیره. ولی ولی شما کجا مطمئنین؟ اما شک ندارم که خودشه به همون شکل و همون حالت دور گردن دختر پادشای پیچیده خیلی تفلک دختر حتما تا حالا زهر ترک شده او خدا رو شکر دختر هنوز زنده است ولی بیوشه چه کمکی از دست من برمیار میخم مگه برات مخدوره به اون کشوره بری و اون مار لعنتی رو از اون دختر دور کن ولی سر این کار خیلی هم ساده نیست میدونم میدونم اما انجام این کار فقط از عهده تو برمیاد ولی من دو ده دو ده... ولی من من آخر ولی نداره تو جوون قلب و مهربونی استی فیکن این اتفاق برای یکی از اعضای خانواده خودت افتاده <تصف> ماش سرورم میرم آه پادشاه اون کشور مرد سخاوتمندیه شک ندارم که در ازای این محبت پول خوبی بهت میده و تو بعد از این ماموریت با ثروت زیاد به خونه برمیگردی کیواید رایشم این طور که شنیدم اون ماره لعنتی بد جوری دور گردن دختر بادشاه گره خورده آه. هر لحظه میتونه برای اون دختر حیاتی باش ازت میخوام که همین الان به خونه بری از همسرت خداحافظی کنی و به این مأموریت بری بسیار خوب. همه امروز رایی میشه. قدرت راهی شد و به کشور همسایه رفت بعد هم نشونی قصر پادشاه رو از مردم اون سرزمین گرفت و راهی قصر شد وقتی خودشو به نگهبانا معرفی کرد اونها قدرتو به اتاق دختر پادشاه راهنمایی کردند تو چه جور ماری هستی؟ به جای اینکه تو بیابون زله کنی و بری کنار مارای دیگه هر بار سرات قصری پات یاد نمیاری. ریسه اینکه یادت رفت دقیقا به خاطر تو دور گردن دختر پادشاه پیچیدم. اه. برای تو هم که بد نشود با دختر پادشاه ازدواج کردی به ثروت زیادی رسیدی. پیر بله. هالاچی، آخ جون دختر بی نوا چی خواهی؟ به چه روزی افتاده از بس که فشار دادی کبود شده تپلکی. من هر کاری بخوام انجام میدم به تو هم نداره. اه. تو حالا درباره ما راه بعد چیزی شنیدی؟ من چیز شنیدم ولی یادت باشه این من بودم که تو رو از دست احت نجات دادم. منم محبت تو رو جبران کردم. یادت که نرفته؟ نه فش. یادم نرفته. اما ازت خواهش میکنم که این دختر رو رها کنی. پدر و مادرش دارن از قصه دق می برای همینم تو رو فرستادن منو از این قصد دور کنی. در حقیقت پدر همسرم ازم خواست به اینجا بیام و دختر پادشاه نجات بدم. کمکم کن جناب مار آبروی من در گروه اینه که این دختر رو نجات بدم و اگه اون رهاد نکنم؟ ایدونم که تو مار مهربونی هستی به خاطر لطف و محبتی که در حقت کردم حتما اون دختر رو رها میکنی و میری التماس هل میکنم جناب مار هم. هر چی فکر کنم می بینم. لطف بزرگی در حقم کردی مم. که منو از دست اون هشمد نجات دادی باشه این بارم به خاطر تو از این دختر میگذرم ولی این بار آخرت باشه خیالت راحت دیگه هیچ وقت منو به چش ایمینی از همین الان بهت بگم اگه یه بار دیگه سر راه من صف شدی ازم خواسته ای داشتی خودتم نیش میزنم جونتو میگیرم با گفتم باشه دیگه آره گروه اون نفس بکشه. باشه. میرم تو هم برو پول تو از پادشاه شاوگی رو از این مملکت برو ماره به تسب <تصفيق> هم گلوی دختر پادشاه رو رها کرد و از قصر بیرون رفت پادشاه هم مال و سروت زیادی رو به قدرت داد و قدرت با خوشحالی به خونش برگشت اما هنوز خستگی راه از تنش بیرون نرفته بود که اتفاق دیگه افتاد او، او، او، او، او، او، او، او، چرا قضا نمیخونی ما گرست نیستم قدرت یه اگه میشه گرست نباشه عزیزم خب من ها من چی شده اتفاقی افتاده؟ نه نه بابا من شوهرتم درسته که تو دختر پادشاهی و من یه چوبان زاده اما هرچی باشه همسرتم هم وقتی میبینم ناراحتی خب ناراحت میشم خب حقیقت اینه که من من امروز خبر ناقواری شنیدم اه. چه خبری؟ چی شده ماپری؟ من دوستی دارم که دختر خوب و زیبایی خوب امروز از مادرم شنیدم که یه مار بزرگ دور گردن اون دختر بیچاره پیچیده و اونو رها نمیکنه. ای بابا بازم مار آره حالا اون دختر خوب نیست شنیدم که مار داره اونو خفه میکنه خب دست من چه کاری برمیاد؟ میدونم که خاسته زیادیه ولی عزت میخوام اگه برات مقدوره بدیدن اون دختر بری و رو ازش دور کنیم ماه پری جان دور کردن مار به این سادگی ها نیست دفعه قبلم چون پدرت از هم خواست جونم و کف دستم گذاشتم و رفتم به یک کشور دیگه و اون ماره لننتی رو فراری دادم میدونم قدرت جان پدرم گفت روشو نداره که عزت بخواد بری و اون دخترم نجات بدی برای همین من می میخوام که این لطفو در حق من بکن. باور کن نمیتونم. این بار دیگه قادر نیستم ما رو از دختر دور کنم. چرا؟ چرا نمیتونی؟ تو دوباره قبل نشون دادی که میتونی بر مار غلبه کنی و اونو فراری بدی. بابا بده. اون دوبار فرق داشت ماه پری جان. الان همه چی عوض شده. چرا عوض شده؟ تو همون شوهر توانمند و شجاع منی که میتونی آدمای زیادی رو نجات بدی. التماست میکنم قدرت. به خاطر من. این بار به خاطر من به دیدن اون دختر برو و نجاتش بده. روی من روی منو زمین نه. <تصفيق> پدر اون دختر تاجر بزرگیه. ثروت زیادی داره. میدونم که مال و اموال بابت این لطفت بهت میده. بابا ولی من نمی نمیخوام. من هیچ ثروتی هم نیاز ندارم. خدا رو شک خودم مال و ثروت زیاد دارم. به این فکر کن که توی انسانو از مرگ نجات میدی عزیزم. التماست میکنم قدرت به خاطر من چی <تصفيق> نگم باشه میرم کی فردا فردا دیره Carbon. اون دختر داره خفه میشه همین امروز برو باشه امروز باشه نارامو که خوردم را میفتم قدرت بینوا حالا توی موقعیت بدی قرار گرفته بود از طرفی به مار قول داده بود که دیگه به دیدنش نره و ازش هیچی نخواد از طرفی هم همسرش ماهپری به اون التماس کرده بود که بره و دختر تاجر رو نجات بده قدرت تمام راه به این فکر میکرد که با چه ترفندی باید مار رو راضی کنه تا دختر تاجر رو رها کنه تا اینکه به منزل تاجر رسید و مرد تاجر هم اونو تا دم در اتاق دخترش همراهی کرد خب دیگه جناب تاجر اگه میشه اجازه بدین خودم تنهایی وارد اتاق بشم ولی اون مار خیلی بزرگه ممکنه شو مارو نیش بزن. نگران من نباشید جناب تاجر من میدونم چطور باید از خودم دفاع کنم مطمئنی که برای دخترم اتفاقی نمیافته خب راستش نمیدونم چه اتفاقی میافته شاید شاید خودم هم نتونم جون سالم از این اتاق بیرون بیارم بیارم ای وای من زوره منظورم منزرم اون دوباری که من تونستم همسرمو دخترم پادشاه دیگر رو نجات بدم جوون تر بودم زبون مارا رو میفهمیدم اما حالا نه جوونم نمیتونم نه به زبون مارا حرف بذارم مرده نکنه بریت این اتاق مار با دیدن دخترمو نیست میتن باور کن، از وقتی که راه افتادم تا وقتی که به خونتون رسیدم صد بار خودم رو ملامت کردم من یه نقشه ای کشیدم که ممکنه جواب بده و اگه جواب نداد چی؟ آه. اگه مار دخترم نیش زد اگه اونو خفه کرد چی؟ اگه مار دخترتون رو نیش زد مطمئن باشین منو هم زنده نمیذارم یعنی یعنی هیچ امیدی نیست هست آه. ولی گفتم قبل از مرگم اینا رو بگم که بعد از مرگم به هم بد و بیران اگی آه باشی بازی بازی ولی من میگم تو میتونی برو برو ایشالله که میتونی باش لاحی به با امیده تو نه نه نه نه لازم نیست شما همراه من بیان باش باشی تنهایی بودی باش, تنهای باش. سلام جناب مان بازم تو مگه من نگفتم دیگه سر راه من سعود نشی مثل اینکه تو از سیر شدی نه نه نه نه نه تو تو خدا به حرفام گوش بده ببین التماست بیکنم امکان نداره ما با هم قرار گذاشتیم بهت گفتم یه بار دیگه ببینمت چی به سر دیگران یادت رفته به خدا تمام حرفاتو مو به مو کلمه کلمه یادمه پس از جون سیر شدی که اومدی اینجا نه نه ده ده تو فقط صبر کن ببین من چی میگم نمیتونم سب کنم تو آدم زادی اینگار یاد رفته مارا نمیتونن خوب باشن بله میدونم ولی به قول قدیمی ها یار بعد بدتر بابد از ماره بعد چی میگی؟ من اصلا این بار نیمدم بگم این دخترو نجات بده منظور چیه؟ میتونم بیام نزدیکتر؟ نزدیک؟ هستی دیگه نزدیکتر از این؟ یه ذره کوچولو در گوشت ببین جناب مار من نه این دخترو اشتاسم نه پدر این دختر نه کاری به تو دارم نه به این دختر اصلا وقتی حرفای من تموم شد دلت خواست میتون این دختر رو نیش بزنی حتی ش... میتونه خودم هم نیش بزنی چقدر حرفی زنی قدرت بگو ببینم چی شده ببین جناب مار من امروز فقط به خاطر جبران محبتایی که ش ش ام کردی به اینجا اومدم که بهت بگم هشبت از چاه بیرون اومده و داره شهر به شهر دنبالت بیگردی که پیداد کنه آه هش هش هشمت خودت بیدونی میخوای از دور گردن این دختر باز چون میخوای باز نشون تو دو میدونی و این دختر رو من رفت اوش. بله دوستان مار با شنیدن اسم حشمت، با چنان سرعتی از دور گردن دختر باز شد که قدرت هم تصورشو نمیکرد مار پا به فرار گذاشت و راهی بیابون شد بعد هم پدر دختر مال و سروت فراوونی به قدرت داد و قدرت با کلی مال و اموال به خونه برگشت و سالیان سال به خوشی با همسرش زندگی کرد و ازیزان این هم از افسانه یار بد بدتر بود از مار بعد که یه افسانه ایرانیه و از کتاب افسانه‌های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اقتباس شده بود مهمترین پیام این افسانه این بود که ما انسان ها راحتی میتونیم با زبونمون دیگران رو آزار بدیم و اونها رو از خودمون دور کنیم یار بد بدتر بود از ما بعد تنظیم برای رادیو سهیلا خدادادی راوی بهرام سرورینجا بازیگران شیرین سپهراد، محمد رضا علی گلچهره زند محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان کامیار محبی، امیر فرهانیا، قربان نجفی، بهناز دوست کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، بردار محمد رضا تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانهای دیگر بدرو